الا بستان نهومه جوانه دو نداشت که هیچ وقت از تنها ماندن خوشش آمده باشد اما این اواخر شاید هم برای اولین بار در زندگیش برای تنها ماندن در خانه لحظه شماری میکرد در هر فرصتی با ملت عشق سر و کله میزد گزارشی را که درباره رمان نوشته بود باز نویسسی می کرد به میشله تلفن کرده بود و گفته بود یک هفته فرصت اضافه می خواهد. راستش اگر کمی میجمبیید می توانست گزارش را سر موقع آماده کند اما خودش نخواسته بود رمان زهارا سبب شده بود به دنیای ذهنی خودش قدم بگذارد. و به این ترتیب هم از مسئولیت خانوادگی فرار کند و هم از دعوا و مرافعه با شوهرش که خیلی وقت بود انتظارش را می‌کشید. این هفته به جلسه کلوب به آشپزی فوزیون نرفته بود. این اولین قیبتش بود. حالا که خودش نمیدانست با زندگیش چه کند سختش بود پهلوی پانزده زن دیگر که زندگی مشابهی داشتند بیستد و آشپزی کند. در این میان الا قضیه نامنگاریش با عزیز را مثل رازی برای خودش نگه داشته بود. چه جالب! این اواخر کلی راز برای خودش پیدا کرده بود. مثلا عزیز نمیدانست الا دارد برای انتشارات گزارشی در مورد رمانش می نویسد. در مؤسسه انتشاراتی هم کسی خبر نداشت الا با نویسندهی که دارد در مورد رمانش گزارش می نویسد مرتب نامنگاری می کند. از طرف دیگر بچه ها و شوهرش نه متوجه درگیر شدنش با رمان شده بودند و نه متوجه نزدیک شدنش به نویسنده رمان. در عرض چند هفته از زنی که زندگی باثبات و یک نواختی داشت به زنی دیگر تبدیل شده بود. زنی که زندگیش پر است از صحلنگاری و شانه خالی کردن و راس. قسمت عجیب ماجرا هم این بود که از این تغییر اصلا ناراحت نبود. آرامشی عجیب وجودش را فرا گرفته بود. صبورانه منتظر بود اتفاقات مهمی بیفتد. از وضعیت روحی جدیدش شاکی نبود. برعکس پس از مدتها برای اولین بار حس می‌کرد دلش هوای دیگری دارد. پس از مدتی دیگر ایمیل کفاف نمیداد. شروع کردند به تلفن زدن. طوری شد که با وجود هفت ساعت فاصله زمانی روزی نبود که تلفنی صحبت نکنند. صدای الا موقع حرف زدن با عزیز ملایم و شکننده میشد. خنده را که شروع میکرد اش موج بر می داشت. و همه جا پراکنده میشد، طوری که انگار نمی توانست از خنده سیر شود. اینها تمرین قهقه زدن زنی بود که هیچگاه در زندگی نتوانسته بود خودش را رها کند. یاد نگرفته بود به حرف دیگران گوش ندهد. همیشه خودش را سرکوب و خواستهایش را سانسر کرده بود. در این میان چند اتفاق در خانه الله همزمان در حال وقوع بود ایوی که نمره های ریاضیش پشت سر هم بد میشد، معلم خصوصی گرفته بود اورلی هم دیگر به خاطر بد پیش روانپزشک میرفت بعد از ماهها برای اولین بار امروز صبح توانسته بود نصف بشقااب املت بخورد و با آنکه بلافاصله حساب کرده بود چند کالری دریافت کرده، به شکلی معجزوار احساس پشیمانی نکرده و نخواسته بود بعدا به خودش گرسنگی بدهد. از طرف دیگر جانت اعلام کرده بود با اسکات به هم زده و با این کارش همه را گیج کرده بود. هر کس هم می پرسید چه اتفاقی افتاده؟ جواب میداد احتیاج دارد مدتی تنها بماند اما تا آنجا که الا خبر داشت دخترش چندان هم تنها نمی ماند اگر پیش از این بود فوراً عصبانی میشد و دخالت میکرد تازگیها سرعت آدمها در برقرار کردن و قطع کردن ارتباط الا را به فکر فرو می برد یعنی نزدیک شدنش به عزیز هم همچو چیزی بود رابطه موقتی وقتی کار مربوط به کتاب تمام میشد این احساس نزدیکی هم خود به خود پایان می یافت این نگرانش میکرد از مش را جذم کرده بود تا در روابطش با بچه ها حالت تاکم نداشته باشد از نام نگاری هایش با عزیز دست کم این را یاد گرفته بود که اگر حالت طلبکارانه و سماجت آمیزش را کنار بگذارد و آرام و ساکت باشد بچههایش با او راحتتر ارتباط برقرار میکنند و دردشان را به او میگویند قبلا خودش را مرکز این خانواده میشمرد و معتقد بود اگر تک به تک بر زندگی همهشان نظارت نکند این ساختار به کل از هم پاشد. زنی سمج بود نیرویی مرکزی که تمام خانواده و همه چیز خانه را در تعادل نگه میدارد. اما دیگر از سمج بودن استعفا داده و به ناظری صبور و آرام تبدیل شده بود شبها و روزها میگذشت. روند حوادث را با نگاهی بیطرف نظاره میکرد. از وقتی توانسته بود قصه چیزها ایران نخورد که نمی توانست کنترلشان کند زنی دیگر شده بود. آدمی موقرتر، تنهاتر حساستر. دیوید متوجه شده بود زنش فرق کرده. یعنی به همین دلیل می‌خواست وقت بیشتری با او بگذراند این روزها زود به خانه برمیگشت الا حدس میزد مدتی است آن یکی زن یا زنها را نمی‌بیند دیوید روزی چند بار می‌پرسید عزیزم خوبی همه چیز رو به هم هر بار با حالتی یکسان می‌گفت روبرا خیلی هم روبرا بعد لبخند میزد از وقتی تک و تنها به گوشه خزیده بود و برای خودش دنیایی آفریده بود پوسته برراقی که زندگی خانوادگیشان را درخشانتر و موفقتر از واقع نشان میداد ریخته بود از وقتی نقش بازی کردن را رها کرده بود می توانست کاستی ها و خطاهای هر دوشان را ببیند. دیگر طوری رفتار نمی کرد که انگار حواسش به دور و برش نیست. حسی درونی می گفت دیوید تحت تأثیر این تغییر رفتارش قرار گرفته. حرف زیادی برای گفتن به یکدیگر نداشتند. زن و شوهر یک بار صبح یک بار شب، موقعی که با بچه ها دور میز آشپزخانه مینشستند یکی دو جمله با یکدیگر رد و بدل میکردند همین و بس بعد ساکت میشدند طوری که انگار واقعیت آشکار را قبول کردهاند بعضی وقتها احساس میکرد شوهرش با دقت نگاهش می کند. به نظر می آمد دیوید منتظر است الا چیزی از او بپرسد شاید هم اگر الا موضوع را مطرح می کرد دیوید آماده بود همه چیز را اعتراف کند ممکن بود راضی شود همه روابط دیگرش را تا آن روز شرح بدهد انگار منتظر بود منتظر آن سوال ساده بود تا مقر بیاید اما الا چیزی نمیپرسید پیش از این برای آنکه زندگی زناشوییشان آسیبی نبیند آبها را گل نمیکرد خودش را به نفهمیدن میزد طوری رفتار میکرد انگار از دنیا خبر ندارد اما الان با هر حرکتش انگار می گفت از همه چیز خبر دارد ولی برایش مهم نیست. شاید هم چیزی که شوهرش را می ترساند همین شخصیت جدید الله بود. این رفتار سرد، این بیخیالی. الله خودش را قوی تر از آن چه بود حس می کرد. تا همین یک ماه پیش احساساتش با احساسات فعلیش خیلی فرق داشت آن وقتها اگر دیوید برای استحکام زناشوییشان قدمی کوچک بر از شادی بال در میآورد. اما الان نه چطور این همه تغییر کرده بود؟ زنی با سه بچه چطور بدبینیش را کشف کرده بود؟ چطور با خودش رو در رو شده بود؟ اگر به آن اندازه که پای تلفن به جانت اعتراف کرد بدبخت بود، پس چرا همان کارها را نمیکرد کرد که زنهای بدبخت می کنند؟ چرا خودش را در حمام حبس نمی کرد؟ چرا پیشانیش را روی لبه وان نمی گذاشت و گریه نمی کرد؟ چرا موقع کار در آشپزخانه اشک نمیریخت چرا به پیاده روی های طولانی نمی رفت طوری که انگار بخواهد از خانه فرار کند چرا دچار بحران عصبی نمی شد و شیشه ها را خرد و خاک شیر نمی کرد آرامشی عمیق وجود الله را فرا گرفته بود هر روز صبح توی آینه به چهرهرش نگاه میکرد و دنبال تغییری آشکار در صورتش میگشت. از یک طرف هیچ چیز در زندگیش تغییر نکرده بود. خانوادهش همان خانواده بود و او همان آدم. از طرف دیگر هیچ چیز مثل سابق نبود. میدانست که درست، وسط نوعی تقییر است